مومد هج رفته به هج رفته هند تو در این بودی که هج رفته اند؟ شعب توی کعبه جز سنگ نیست آوینه این مثل تو بی رنگ نیست آوینه ی ره گذر سووفیان سنگ نسیده گذر کوفیان کوفه دم از نهرو وفاو می زدند شام تو سنگ دفاو می زدند کوفه اگر آوینه اتراو شکست شام از این باوگه ترکی نبست اگر تیغ و تبرزین شد، شاو اگر یک سرع شود مرگ اگر اسب مرا کند خون مرا تیغ به تو کند، می‌کند آتش پرهیز نبرت مرا تیغ عجل نیست نبرت مرا بی سر و سامون توام یا حسین دست به دا توام یا حسین چاو عبی بی سر بندم کن گردم از خاک بلندم نکن اوقبت این عشق خلاچم کند در گذر کوی تو خاکم کند تربت تو بوی خداو میدهد بوی حضور شهدا میده مشعر حق از منا کرده ای کعبهش گوشه بنا کرده ای تیر تلت را به مسافت اومده تیر تلت را به تواب شکا و بخش دل ریش ما مرهم زخم و غم و تشمیش ما چیست به جزیاد گل روی تو سجده به نفرام و به لحظ تو بر سر نی زولف رها کرده ای سر نی زولف رها کرده ای باجگر شیعه کرده ای باز که هنگام برانگیختی در جگر شیعه نمک ریختی كو كفنی تو كه تنت گیرم حسین ابن علی در خون شنا کرد مرا با این حقیقت آشنا کرد بلایت بی بلا معنا ندارد نجف بی کربلا معنا ندارد هفتاد و دو ماه و زهر آشورا شکل کمر امام را دیدم هفتاد و دو پشت آسمان خم شد وقتی کمر امام را دیدم عطاول دوست در یک خلیل الله در عزم خلیل حق خلل هرگز در سیر و سلوک الله تعظیم بهیبت و ببر هرگز